برای آنکه بتوانیم در هایمان گامی فراتر برداریم به اصطلاح دیگر از سنگ که در اوستا آمده است رجوع میکنیم این واجه زر استوا میباشد ست آر اس ت فو آ پیشوند زر به معنای با هم همیکی ساختان است یگان ساختن متحد ساختن جفت ساختن ولی پسوند سطوا، ست همون واژه ستوا در سانسکریت است این واژه ستوا در سانسکریت به معنای نطفه و جنین و ماده اولیه و جوهر حقیقی و طبیعت هر چیزیس. بنابراین زار به معنای ماده اولیه یا فطرت و نطفه به هم پیوستن و با هم یکان ساختن است. این فوق العاده این لغت هویت واجه سنگ را می گسترد اثر سر معنایش رو تکرار می کنم سرستوها به معنای ماده اولیه یا فطرت و نطفت و نطفی به هم پیوستن و به هم همگانه ساختن است خوب می بینیم که سنگ چه معنای بسیار ژرب و مهمی داشته است و این واژه از واژههایی کلیدی در فرهنگ ایران بدون این ما فرهنگی را که شناسی زردوشتی و زردوش به عقب زدهاند نمی نمیتوانیم درک بکنیم اگر دقیق تر بشویم می‌بینیم میبینیم که پیشوند ست در سانسکریت به معنای ذات و وجود حقیقی هست و پسوند توا چنان که در خود واجه های عوستایی و پهلوی میتوان دنبال کرد هم به معنای تخم است هم به معنای است که, ب... که در واقع زهدان باشد زهدان و نی و این است که این تخم و نهی که معنای تباه هست یعنی چی؟ یعنی با هم آفرینندن همون معنای جفتی رو دارن چون که تخم در زهدان سمبول و نماد از خود آفریدن است. بدین ترتیب استوا به معنای اصل آفریننده از دوستی و مهر و پیوند است. به عبارت دیگر در سنگ هم نرینه و هم مادینه با هم است به, قول... به قول مولوی در سنگ زن و شوی با هم است چنانچه ب... و این چون س... س... ن... هر چیزی که نر و ماده با هم است این اصل استقلال و آزادی بوده است از این رو به رستم تهمتن میگفتن چون هم تخم است هم تن هم زهدان تخم هم یکی از تلفوزهای تخم است هرچند در مترجمین به معنای نیرومندی و قوت میگیرن نیرومند و قبی میگیرند ولی در اصلش به معنای اینست که از خود بودن از خود مستقل بودن است از خود آفریننده بودن این است که این باجه را در سانسکریت سو میگویند در ایرانی اوستایی و پهلوی هوا میگویند که همون هوای ما باشد که ما به اون چیزی که تنفظ میکنیم اطلاق میکند ولی معناش یعنی از خود برای این خاطر اینقدر هم محمد هم در شاهنامه و اینها بر هوا را بر ضد خرد میدانند این از خود بودن را از خود قائم به ذات خود بودن از خود بودن در تمام این ادیان نوری نف می شود این است که می بینیم یک دفعه هوایی را که ما ازش تنفس می کنیم زنده می شود هوا و هوا هوای نفس و کسی که اتخاذ می کند هوا را به عنوان در این محمد این است که محمد هیچ وقت از هوای خودش حرف نمیزد یعنی هیچ وقت از استقلال خودش حرف نمیزد به حرفی همه را چیزوحی از الله بود حالا ببینید اینا مانده است حالا چنانچه در بندهشت به ابر و آدرخش که آب و آتش باشد سنگ گفته می شود چون که آتش معنای تخم دارد بنابراین آب و تخم باز از یعنی اون چیزی که از خود آفرین است و در سجستانی به زهدان سنگک گفته میشود چون زهدان و تخم یا جنین با هم یک جفت هستند و نانی را که ما سنگک میخوریم برای همین است چون که این اجاق زهدان بوده است تنور و نان ب... در آن کودک بوده است چنانچه در سقدی به رگ و پی رگ و, پی، رگ و پی، رگ پی است اینها دو جفت آفریننده آفرینندگی در ایران بودند در سقدی به رگ و پی سنگ گفته میشد یعنی خدای ایران یعنی اصل آفرینندگی ایران که ارتاق و بهرام باشن سنگ هن. از این رو مولوی در قزلی می میگوید که در سنگ زن و شوی و همان بدین علت بود که اصل آب و آتش را سنگ میدانستند برای ما این مورد تعجب است این معنای سنگ در ادبیات ما باقی مانده است و اما ما زود از آن میگذریم مثلا مولوی میگوید چراغ و شمع گر بمیرد چقم چون سنگ و آهن هست برجا یعنی اثر ما ما میتوانیم بیافروزیم بی البته آهنم چون گفتیم همون آسن است سنگ است البته این مولوی یعنی سنگ و آهن به زدن ولی در فرهنگ ایران خود سنگ بدون به هم زدن اسیر آب و آتش بود چون چشمه بنوش از دل سنگ بشکن تو سبوی جسم و جان را یعنی اسیر بشو ببینید اینجا ما همه باند تو اسیر بو و رنگی به مسال نقش سنگی بجهی چو آب چشمه ز درمون سنگ خارا باز میبینید اینجا معنای اصیل از بودن سنگ میاد تن چو سنگ و آب او اندیشه ها سنگ گوید آب داند ماجرا سنگ میاد که آب ماجرای زایش خودش را میداند اون وقتی در جایی که بحث از علم لدون علم از خود میکنند که البته به معنای نزد خدا نیست بلکه نزد خود هست مولویش غزل خیلی قشنگه است در دل چون سنگ مردم آتشیست اینجا معناش سنگ دلی نیست بلکه معناش معناش س... معناش به معنای اصالت است در دل چون سنگ مردم آتشی است بسوزد پرده را از بیخوبون همه پرده خرابات و موهومات و چیز افکار کازوار همه را این, این پرده ها را پاره می یعنی در دل انسان اصالت هست گر زنگ زندگانی بودی مسال سنگی خوشتشمه ها دویدی از سنگ زندگانی ببینید در همه اینها ها با وجود که مولوی دقیقا از مفهوم سنگ به معنای اسیل ایرانیاش آگاه نیست ولی درست در این معنی به کار میبرد با وجود اینکه که چون میگوید مثلا در شاهنامه به سام خرد سنگی نسبت داده میشود رستم مانند او خرد سنگی خواهد داشت این به معنای آن نیست که با وقع رو پرارزش خواهد بود بلکه خرد سنگی همون آسنخرت هست یعنی خردی که خودش سرچشمه اندیشه است خودش از خودش میزاید مستقل است آزاد است چون خودش میآمیزد و سنتز میکند تجربیات را با هم میسنجد میسنگد میسختد تا اندازهای این اینکه اصطلاح سنگ چه معنایی داشته است سخن رفت خلاصه این گفتار این بود که سنگ به معنای آن است که در آن نطفه و ماده اولیه و جوهر حقیقی هست که از خود می آفریند که خود جوش است که مستقل و قائم به ذات است اکنون بررسی را ادامه میدهم و به سنگ رنگین سنگ رنگین می پردازم در روایات پهلوی چنان که در پیش گفتم دیده می شود که در باره مهره های رنگین آمده که مهره ها از گوهر ایزدان که نیروی هفت رنگ دارن هست حالا این, این همین جمله رو دقیق می شه بیم می یکی اون که مهره ها یعنی سنگ های رنگین گوهر ایزدان رو دارن یعنی هم گوهر دیگر آن که چی؟ این ایزدان گوهر هفت رنگ دارن ببینید این به کلی با یزدان شناسی زردشتی فرق دارد ایزدان ایرانی خدایان ایرانی گوهر هفت رنگ دارند یعنی گوهر رنگارنگ این خیلی مهمه این اساس فلسفی تسامح و بردباری و پذیرش همه عقاید و افکار و آزادی همه عقاید و افکار هست. در اینجاست که هم گوهر با سنگ های مطرح می کرده. اگر ما همین جا دقیق بشیم خود واژه رنگ در اصلش ارنگ بوده است که مرکب از ار و انگ است ار یعنی حرکت روان بودن انگ در دوانی در گویش دوانی به شیرابی گیاهان گفته می شود. و در بندهش بخش نهم میابیم که رنگ ها از شیره گیاهان فراهم می است ولی انگ در عصر به معنای نی بوده است مثل انقا که به گلو اونق در عربی به گلو گفته میشد یعنی یعنی خهمون نی باشد ولی معنای و معنای تن بوشه به کار برده تن بوشه بوشه که یعنی سوراخ یعنی زهد... ن... ن... نای تن تن یعنی زهدان یعنی درست تن بوشه معناش این است به... به کار برده میشدن حالا و از, از انگ به معنای رنگ ار انگ به معنای چیست؟ یعنی شیرابه روان شیرابه روان گیاهان است. در گزیده های زادش پرم و برهان قاطع معنای خون هم دارد خون هم یکی از جد هاست یکی از شیرابه ها چون اینها را همه را در پرهنگیران آب میگفتن جد میگفتن مان میگفتن حالا رنگیدن رنگ یکی از واج... معانی که باقی مانده است و معنای روییدن است ببینید اینها همش مانده است یعنی یعنی رنگ از چیزهای روییدنی گرفته می شود از شیرابه اینها البته جهان هستی برای اون موقع برای نیاکان ما از انسان گرفته تا جاناوران تا کوه و آسمان در این فرهنگ رویشی بودن پس شیرابه آنها که همون رس، مان مینوم جد، انگم انگ انگ جد باشد جوهر و مغز کل گیتی و خدایان بوده است این درک این خیلی مهم است یعنی شیرابه روان در جوهر و مغز کل گیتی خدایان بودند واژه دیگر رنگ گون گاونا هست که به معنای که معنای اصلیش موی هست و مو با گیاهان این همانی داده می شود است که در سخن پیشین با این حرف با این گون تایید می شود چرا چون که میبینیم ال ه... است که با گیاهان و شیرابه گیاهان همون رنگ است ولی گاونا گون به معنای سرشاری و قنا نیست است و در سختی دیده می شود که گنچک که قنچه ما باشد هم به معنای زیبایی و هم به معنای رنگ است یعنی چی؟ رنگ ها این همانی با زیبایی داشتن این خیلی انسان در رنگ در ها در رنگارنگیها چی میدید زیبایی می دید. پس شیرابه و جد و رس و مان و انگم و یعنی جوهر و مغز هستی زیبایی هست این خیلی مهم بود این یکی از جربترین تجربیات بوده است. و این شیراب وجد که همون رود ارنگ یا رنگ باشد و چنانچه در پیش گفتیم جفت وهرود و با هم دریای محیط و روان در سراسر گیتی هستند اینها چی؟ اینها از هر چیز در ترکیب با هر چیزی در آمیختن هنجیدن با هر چیزی می‌وخشند. اکنون همه این راس، این جد این انگ این گون رو می وقتی چکار کارو طبعا می وخشن وخشیدن می روین. شعلور می این است که دیده می شود رنگ رنگ ها در باندهشت می بینیم وخش هستن این استرا خیلی ما یعنی یعنی رویده هستند یعنی از گوهر چیزی از باطن و درون های هر چیزی از مغز هر چیزی پیدا شده رنگ چون که در واجه گون دیده شد سرشار است رنگارنگ است یک رنگ رنگ نیست سپید به تنهایی رنگ نیست در سانسکریت برنگ به معنای رنگارنگ است رنگ راتنا به معنای برانگیخته از عشق است رنگ کرنا به معنای زندگی شاداب داشتن است ببینید این تمام،, این تمام شادی عشق اینها همه به واجه رنگ برمی گردن پس رنگ که جد و شیراوه و خوراوه و مان و مینو و جوهر و مغز روان در جهانت در ما جد می شود و میهن جد. ما می بخشیم. این است که در بندهش بخش نهم دیده دیده می شود که می در رنگین کمان فراموش نکنو رنگین کمان چی است کمان بهمن اصل همه دنیا اصل خرد و بعض در هر انسانی در رنگین کمان چی است آبی و زرد و سبز و سرخ و نارنجی و نارنجی است. اون وقت اینها در این بندهش میاد که آبی و زرد و سبز و سرخ و نارنجی وقش دیو هستن اه. چطور یک دفعه رنگ کمان شد وقش دیب سپید وقش ای زدی. علت این بود که یه دانش دانشناسی زردشتی سپیدی را گوهر احور آمزا که این همانی با بینش و دانایی و روشنی داشت این یک یک رنگی یک نواختی دروت فرهنگ ایران برزده این بود به عبارت دیگر به با همه رنگ ها دیگر را یه زردشتی دیوی می‌دانست و تر و رد می کرد زدیت با رنگ و با رنگی بودن و رنگارنگ رنگ بودن به عبارت دیگر زدیت با زیبایی و شادی از زیبایی و از رنگها به عشق انگیخته شدن شاداب شدن با همین اندیشه زدیت با زندگی زدیت با رنگ زدیت با اینها با همین اندیشه از آزیاد شناسی زردشتی بنیاد نهاد شد در حالی که دیدیم که در اساطیر رنگارنگی گوهر ایزدان رنگارنگی گوهر ایزدان شمرده میشد و این درست این چیزی که اینجا در اساطیر عفیفی باقی مانده است این فلسفه مردم بوده است فلسفه این زن خدایان بوده است که به رغم یزدان شناسی مو باقی مانده است در واقع رنگ وخش یعنی رویش و اپروزش و شعلور شدن خدایان و ایزدان از چیزها بوده است. از این رو نیست هست که همه خدایان ایران این همانی با گلها و گیاهان دارن نه تنها سنگهای قیمتی بلکه همه گلها و گیاهان وخش خدایان هستند. یعنی چی؟ یعنی خدایان از گلها و گیاهان میوخشن این خیلی یعنی ببینید دنیا چی میشود دنیا همه دیتی اینی که دنبال سکولاریسم میدوند این ما داشتیم این جز به بدگیات ایران بوده است از چیرابه جهان چیک خدایان بودن از گلها گیاهان از همه چیز میرودن به در سنگهای قیمتی هم بودن رنگ آرنگی گوهر ایزدان است نه یک رنگی درخت زمان سی شاقه دارد که هر کدام وخش خدای دیگریست از این رو سیمور را نیست که وقتی نقش میکنن هنوز وقتی نقش میکنن همه پرخوایش رنگارنگ است رنگین کمان کمان بهمن است یعنی اصل خرد و بعض در همه چیزها رنگارنگ است این بنیاد پذیرش رنگارنگی افکار و عقاید و مکاتب و ملل و قبائل و اقوام در اجتماع و در جهان است و اینکه که رنگهای رنگین کمان و این که های رنگین کمان به دیوان سامگان در بندهش نسبت داده می شود بیان آن است که خانواده سام و زال و راستم فلسفی رنگارنگی را پذیرفته بودن که همون میدانیم که اینها جز کیپتگان و آشقان سیمرغ بودن و درست وای به یا باد نیکو که اصل پیوند و مهره هستی در همه چیز هاست جامعه رنگارنگ یا جامعه سبز پوشیده جامعه سبز هم چونکه هر چیزی که سبز شد رنگارنگ میشود سبز شدن نه به این که چیز سبز هست سبز شدن یعنی رنگارنگ شدن و این وای به با موزه چوبینش که همون موزه سبز یا ذرین به هر کجا گام که همین خضر فرخ بی باشد و بلا فاصله اونجا سبد و رنگارنگ می شود بای به به هر کجا که می وزد گوهرشان در رنگارنگی در زیبایی پدیدار می شود از روح است که همه سپهرها ها می و رنگارنگ هستن و هفت رنگ هم. رنگ وارونه تفکرات بعدی یک بزک ظاهری نیست مثل امروز که ما رنگ را بیشتر به معنای مکرو فریب درک میکنیم، رنگ که میفریبد در صورتی که پیدایش گوهر و فطرت و نهاد چیزها و انسانها به این جلوه خدایی و ایزدی یا وخش فطرت و تینت خدایی و ایزدی هر چی همه چیزها ما در گیتی وخش خدایان را میبینیم. رذت میبریم خدای این خدایانن که در چیزها در چیزهای گیتی عشقهای کیتی در سنگهای قیمتی جلوه میکنن ظهور میکنن بر این شالوده بود که سنگهای رنگین یا مهرهای رنگین ویژگی افسونگر ایزدی داشتن این عشق فراوان به رنگ در چیزها عشق به زیبایی در گیتی و انگیختو شدن به عشق از زیبایی ها در گیتی بود انسان زندگی رنگارنگ، اجتماع رنگارنگ، جامعه رنگارنگ، های رنگارنگ را دوست می داشت و در رنگارنگی بخش وخ، ایزدان را می‌دید، نه بخش دیوان را. با آمدن ادیان نوری، ذدیت با رنگ، با زیبایی گیتی و زدیت با کامبردن از رنگارنگی زندگی در گیتی پایگذاری شد. و درست مفهوم روشنی در فرهنگ ایران جدانا پذیر از رنگارنگی بود. جایی روشن است که رنگارنگی هست. جایی که ابکار و عقاید رنگارنگ هست روشن است. برعکس در یزدانشناسی هزار دوشتی سپیدی جای رنگارنگی را میگیرد. یعنی عملا بیرنگی اساس غار میگشود چون یک رنگ رنگ نیست. بنابراین میبینیم که با پیدایش یادون شناسی زردوشتی اون پرهنگ تسامح و مدارایی و دوستی همه افکار و عقاید از بین رفت